به نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان درویش و پیر مرد. در مقدمه ای که بر روایت دختر چوپان نوشتیم اشاره کردیم که قهرمانان قصه ها گاه از زبان رمزی سود می جویند. در قصه هر کس قادر به درک معناب و مفهوم این زبان نیست چرا که معمولاً به پوسته سخن توجه میکنند و نه به مغز آن. روایت درویش و پیرمرد که معمولاً از آن به عنوان جزی از یک روایت بلندتر استفاده می شود، به صورت روایت مستقلی درآمده و نقل شده است. در این روایت درویش زبان رمزی به کار میبرد ولی پیر مرد چیزی از آن نمیفهمد. دختر او پس از اینکه معانی گفته‌های درویش را توضیح می‌دهد می‌گوید درویش پوسته بود و رفت مغزش اندیشه‌اش پیش ماست در قصه های حکمت آموز از زبان رمزی بیشتر استفاده می‌شود متن کامل روایت درویش و پیرمرد را نقل می‌کنیم و من شما را به شنیدن اون دعوت می‌کنم یکی بود که از روزگاران قدیم بود یه درویشی تو مسیر یه آبادی با پیرمرد همراه شد بعد از سلام و و حال احوال پرسی از پیرمرد پرسید پیرمرد کجا میری پیرمرد جواب داد معلومه میرم خونه آبادیم پشت اون پیچو خماست درویش گفت راه دراز بیا توی راه پله بذاریم و راه رو نزدیکتر کنیم. پیرمرد مرد گفت سادگی را بردی مگه میشه تو راه پله زد باید راه رفت و پشت سر و هم نگاه نکرد. درویش گفت اگه تو راه پله بذاریم راه نزدیکتر میشه. پیرمرد جواب داد نمیفهمم چی میگی. حرف نزن. ای راه پیش پاتو برو؟ دو ساکت راه رو ادامه دادن تا اینکه به رودباری رسیدن رودبار پر از آب بود بیگدار بود برای عبور ازش بایستی به آب زده میشد درویش گفت چطور یکی از ما پل بشیم لا یکی از ما بگذره پیرمرد جواب داد نمیفهمم چی میگی این رو گفت و این طرف و اون طرف رودبار رفت و بالاخره هر دو به آب زدند و با لباس خیس اون سوی رودبار راه خودشون رو ادامه دادند یک فرسخ راه رفتن که به نزدیکی آبادی پیرمرد رسیدند مزرعه بوکش زار گندم روبروشون بود 20 روز دیگه میشد گندمزار رو درو کرد درویش با دیدن گندمزار به پیرمرد گفت صاحب این گندمزار یا قله خودشو خورده یا بعدن میخواد بخوره. پیرمرد گفت واقعا عجب درویشی؟ صاحب این قله خورده یا میخواد بخوره یعنی چی؟ خواب دیدی درویش؟ خواب دیدی خیر باشه؟ به قبرستان آبادی رسیدن. تشیه جنازه بود. درویش اشاره به تابوت کرد و گفت این مرده الان مرده است یا بعدا میخواد بمیره پیرمرد خندید و گفت اینکه که مرده است حالا میخوام ببرن دفنش کنن درویش یه نگاه نگاهی به پیرمرد کرد و گفت به خونت نزدیک شدی پیرمرد گفت بسم الله درویش راه مال روی رو نشون داد و گفت اهل راه هستم باقی راه من هنوز باقی است. حق نگهدار. پیرمرد به خونه اومد. از حرف‌های درویش بیالتهاب و بیگفتگو نبود. دختر از پیشونی پدرش خون که برای پدرش اتفاق صورت گرفته. ازش پرسید سفرت چطور بود؟ پیرمرد گفت وقت رفتن به شهر بد نبود اما در بازگشت با درویشی پر حرف و یاوگو همراه راه دو دختر با کنجکاوی پرسید حرفا چی بود؟ پدرش گفت همون ابتدای راه گفت بیا توی راه پله بزنیم به رود بار رسیدیم گفت بیا یکی از ما پل بشه به قل زار رسیدیم گفت قله رو صاحبش خورده یا بعدن میخواد بخوره تو قبرستان بود که به دیدن ای گفت این مرده الان مرده است یا بعدم میخواد بمیره حرفاش این بود بعدم راهش و کشید و رفت دختر خندید و گفت بابا جان حرفای درویش همش حکمت داره اونجوری که گفت در راه پله یا پلکان بزنیم منظورش این بود تو راه با هم حرف بزنیم صحبت بکنیم تا متوجه نشیم که کی به آبادی رسیدیم و درازی راه به نظر نیاد پیرمرد گفت اجل پس من خیلی ساده هستم دختر گفت در لب رودبار پر آب که گفت پل بسازیم مقصودش این بود یا تو اونو روی دوش بگیری یا اون تو رو با این وضع یکیتون خیست می شد گفت عجب من ساده دلو بگو دختر گفت به قل زار که رسیدین و گفت صاحبش قله رو خورده یا بعداً میخواد بخوره بدم نگفت منظورش این بود اگه گندم رو پیش فروش کرده پیشا پیش قله رو خورده اگرم سلف نفروخته و پیش فروش نکرده موقع درو محصول گندم داره و سرمایهی بر اینکه تو آینده بخوره پیر مرد گفت در مورد جنازه چی میگی؟ دختر جواب داد در مرد, مرد هم بد نگفت اگه مرد فرزندی نداشته باشه مرد مرده است نامش روی کسی نیست بعد خواهد مرد یعنی مرد فرزندی داره فرزنداش تا زندن و تا بمیرن مرد بعدن می میره حالا اگه فرزنداش فرزند داشته باشن اسمش رو فرزند فرزندش نگه می داره بازم بعدن میمیره یعنی اون جسمش مرده اما اسمش زنده است پیرمرد گفت حالا من از کجا این درویش رو پیدا کنم دختر گفت درویش پوسته بود و رفت مغزش و اندیشش پیش ماست بابا جان به این سرخوش باشی. باشیم مرد گل از گلش شکفت و گفت آخر عمری عجب درسی گرفتم این پدر و دختر یه استکان چاییم هم پیش ما نزاشتن و ما اومدیم درویش و پیر مرد، چهل گیسو تلا، صفحه هفتاد و سید حسین میرکازمی، نشر مرکز، چاپ اول، هزار و شنوندگان عزیزم، امیدوارم از این داستان، خوشتون اومده باشه و با لذت برده باشید و در داستان بعد هم منو همراهی کنید همه شما رو به خدای مهربون میسپرم سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی